چه های خوب میان و آنها پیدا میشدند. با آنها دوست میشدم. مثل بلاردر آنها را دوست می داشتم حاضر بودم برای آنها همه جور فداکاری کنم. به من کتاب می دادند میکوشیدند مرا برای یک زندگی مفید جلب کنند. گاهی از من سو استفاده سیاسی میکردند بسسا های را به من می دادند و من آنها را به ایران میفرستادم. وقتی پختل من بودند همش از حوزه، کنفرانسو، مینگ گدمون صحبت می کردند از سیاست از استبداد از رژیم پلیسی ایران از فقر و مذلت مردم حرف میزدند و من لذت می بردم که دارم آنها عخت میشونم. اما همه اینها یکی یکی به من دل می باختند و ارزششان در نظرم کم می شد. ببینید با چه بدبختی دست به گریبان بودم فقط یکی از آنها استثنا بود. خوشبختانه آن یکی نامزد داشت و با او زندگی میکرد. من هم توانسته بودم اطمینان این دختر ملوس را جلب کنم و او بفهمانم که به نامزدش نظری ندارم. این تنها دختری بود که من را دوست داشت و خدا میداند. شاید هنوز هم دوست دارد. همین جوانک که نقاشی یاد میگرفت و همیشه علیل و ناخوش بود، هم او باعث شد که من در فرنگ هم از چار سا... سال چهارون به بعد دائمان به فکر استاد باشم و وقتی به ایران آمدم هیچ چاره نداشتم جز اینکه او را ببینم و با تمام نیروی خود به خدمت او کمر بندم. از این یک جوان گذشته بقیه کسانی بودند که در نبرد با من واخورده بودند و یا در خیال پیروزی بر من کاخها در سر ساختند. نتیجهش میدانید چه بود؟ من میگویم به شما سریحن میگویم تا بعد آسانتار بتوانم از خود دفاع کنم تا بعد بتوانم شما را متقاعد سازم که او استاد چه اشتباهی کرد این چرچم که از من ساخته مال من نیست نتیجهش میدانید چه بود نتیجهش این بود که من کینه ای از این اشاق ابله بده گرفته بودم و زجران حال لذت میبردم کیف میکردم آنها رو بچه زانم هرچه آنها دیوانه تر می شدند من سخت تر می گرفتم. این دیگر زندگی من شده بود نقاشی تحصیل در فرنگستان در اکل دس بیوز اینها دیگر وسیلهی بود برای سرگرم کردن من بگذارید حادثهی در زندگی من اتفاق افتاده را برایتان بگویم اگر چه ارتباطی با زندگی استاد ندارد اما دلم میخواهد این پیش آمد را آنطوری که در واقع بود برای شما نقد کنم. گمان می کنم آن وقت مرا بهتر خواهید شناخت. جزو محسنین که در اکول دسپیوکس آرتس با من هم درس بودند یک نفر ایتالیایی به اسم دونالتو بود. این یک مرد چهارشانه خوشیکل بسیار بسیار زیبایی بود. صوف های مشکی، چشم های سیاه، ابروهای پرپشت و عوضش یک بینی قلمی و لب و دهنی انگیز داشت. با نگاهش تا ته دل رخ نمی کرد. اما در نظر من این چشم های سیاه دروش با آن نگاه تندش مسخره می آمد. خجالت نمی کشید. کم جرعت نبود. منتها مناعت داشت. هر وقت من متوجه او میشدم شدم می دیدم که دارد به من نگاه می کند اما زیر چشمی و به محض اینکه رویم را رو به سوی او میگرداندم نظرش را به جانب دیگر میچرخاند گویی اصلا مرا ندیده پس از چهار سال زندگی در پاریس با تمام عدا و اطفارها آشنا شده بودم یکی گستاخ و دریده بود میآمد میزد میخورد و میرفت یکی از سر و صورتش احساسات میچکید با شعر و موسیقی نزدیک میشد قطر, قطر میخواست امواج سرشار عشق سوزانش را بچکاند. کند. بعضی بی و بی هستند و با اشاق افلاطونی موی دماغ آدم می بعضی مصر و لجوج هستند. اما از اینها که آدم را زل می کنند و من به خوبی می دانستم که با هر کدام چگونه باید رفتار کنم. این ایتالیایی که 27 سال داشت از همه به نظر من مصحکتر می او دار بود و خودش را میخورد حتی به او امید هم میدادم اما نزدیک نمیشد یکی دو بار به او خندیدم یک بار به صورتش نگریستم سر کلاس نزدیک او نشستم قلموی را در نزدیکی او طوری که دیگران نفهمند به زمین میانداختم اما او به روی خودش نمی‌آورد. در این حال از اداهایش پیدا بود که شیفته من است یک شب با جمعی به بیوست بلور رفتیم. اولین شب بود و هوا صاف و محتابی. در جنگل راه می رفتیم. آنها هر کدام به زبانهای خودشان آواز می خواندند. اغلب از محسدین اکل آرس بودند و بیشترشان دختر. وقتی مردها از کنار آنها رد می شدند قشقش می خندیدند. این خنده های بیمزه آنها مرا آزار می داد. کم کم از آنها دور شدم و تنها به پاولین رفتم رستوران زیبایی است ناگهان دیدم رو سر میز نشست و یک گیلاس آپورتیف جلوش گذاشت و فروفر سیگار می کشد. یک راس سر میز او رفتم از دور مرا دید سرش را بلند کرد و با چشمهای درشت سیاهش به من نظر انداخت گفتم اجازه می دهید میز شما بنشینم از جایش بلند نشد با دست اشاره کرد سرمیز سندلی صندلی خالی نبود ناچار برخواست صندلی خودش را این طرفتر گذاشت و به من داد مدتی ایستاد تا گارسونی پیدا شد و برایش صندلی خالی آورد زیرسیگاری پر از ته سیگار بود بعضی از آنها را تا ته نکشیده خاموش میکرد و معلوم بود که از این دود کردن بدش میآید. با وجود این می کشید. همین که نشست سیگارش را خاموش کرد. پرسید: چه می گفتم: بگویید یک اپراتیو هم برای من بیاورند بعد شام میخوریم. صحبتمان در نگرفت. نشسته بود و سیگار میکشید. از محتاب از پاریس از مثرین از دیگر همراهان خود صحبت کردم. بیهوده از هنر گفته گوبه میان آوردم مفصل برای شهر دادم که دوستار هنر از خود هنرمند بیشتر لذت میبرد مثلا من هر هنرمندی از کار خودش حد اگر شاهکار هم باشد ناراضی است همیشه میخواهد بهتر و زیباتر از آنچه که خلق کرده بسازد همیشه میتواند او به آن را ببیند هنرمند بهترین منتقد آثارش است اما تماشاشی غرق لذت می شود اغلب مردم نواقص را آسان ادراک نمی کنند فقط زیبایی های آن را می بینند منتظر بودم که خلاف من ابراز عقیده کند بحث درگیرد او را به حرف آوردم و بعد با سحر و افسون صورت زیبایم کارش را ساختم وقتی اظهار عشق کرد مسخره کردم و از شر یکی هم خلاص شدم. اما زیر بار نمی رفت. سیگار میکشید و دودش را برای اینکه مزاحم من نشود به هوا می تارند. وقتی سرش بالا نگاه داشت های زیر گردنش ماورای پوست سفید کبود میشد و من ارتاش بدن او را میدیدم. با وجود این سرد نشسته بود و هیچ نمی گفت.